شنوندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید صبح دیروز شیر دلان و زائران کف حسینی در عملیاتی غرورآفرین و با یورشی دلیرانه و برگاسا مرزبانی مهران را در هم شکسته و موفق شدند دشمن زبون را از مرزبانی رانده و بدون گذرنامه و روابید تا عمق خاک عراق پیش روی نماگند ما مرز نمی‌شناسیم ما عاشقان عبوری و مرز و مرز بامی اگر برای بزدلا نظاهرنما مان است برای ما خاطری بیش نیست بشتابید ای لشگریان مرز مرزگریز ای دلانوران مرزبان ستیز دست حق به همراهتان بشتابید کرب و بلا نزدیک است